آن کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد، بس که او بر دل غمناک نهاد، بسیار لب چلعل و زلفین چو مشک، در تبل زمین و حقه خاک نهاد. ای بی خبران، اشوه دنیا مخرید، چون از همه حالهای او باخبرید، بین عمر عزیز خیش مدهید و باد، هانیار طلب کنید و هین باده خورید. ای هم نپسان مرا ز می قوت کنید وین روی چو کهربا با چو کنید چون مرده شوم به می بشویید مرا و سوب رزم تخته تا تاقوت کنید آن روز که تو سن فلک زیم کردند وارایش مشتری و پروین کردند این بود نصیب ما دیبان غذا ما را چه گناه قسمت ما این کردند